این داستان خیات خشتینت به همان سادگی که کوه و دره در کنار یکدیگرند انسانها هم می راه نیکی یا بدی را برگزینند. جریان این گونه شروع شد که بر حسب تصادف یه خیاط و یه کفاش تصمیم گرفتن با هم دوستانه به سفر برند. روز روزی ریز نقش خوشقیافه شاد و قبراق بود در میدان ده به کفاش برخورد کفاش فسایل کارشو در جبهی حمل میکرد و شوخ وشنگ فریاد میزد و میخوند با کشیدن نخا درز کفشاتونو میدوزم با واک زدن به کفشا تا دیر وقت شب کار میکنم کفاش یک ریز این ترانه رو میخوند اون چهرهی ابوس داشت مثل آدمی که یه لیوان سرکه سر کشیده باشه و جوری که انگار هر لحظه میخواست با خیات دست به یقه بشه خیات خوشرو همچنان که میخندید میگفت سخت نگیر بیا چیزی بخور تا حالت به جا بیاد کفاش قبول کرد و چند جور از نوشیدنی نوشید و تلخی چهرش برطرف شد بعد شیشه رو به خیات داد و گفت شنیدم آدما وقتی رفع تشنگی میکنن بهتر میتونن حرف بزنن. میای با هم سفر کنیم؟ خیاط در جواب گفت: با کمال میل، خصوص اگر بخوای به شهر بزرگتری بریم چون اونجا کار و بارمون رونق میگیره. کفاش گفت: جانا، سخن از زبان ما میگی. این ده کوچیک مثل قفس ما رو در خودش حبس کرده. از کار و کاسبی هم که خبری نیست. مردم روستا هم که ترجیح میدن پا به را برن و پول کفش ندن. با این قرار و مدارها اون دوتا آزمه سفر شدند. سلانه سلانه از جایی به جای دیگه میرفتن و روزهای زیادی راه میرفند. ولی چیزی برای خوردن و نوشیدن نداشتند. برای همین وقتی به اولین شهر رسیدند بیدرنگ هر دوشون به دنبال کار رفتند. حیات سر حال دلزنده و خوش برخورد بود. با اون گونه های سرخش به راحتی کار پیدا کرد و مشغول شد. کم کم کاروبارش به خاطر اخلاقش رونق گرفت و بعد از مدتی با کیف پولی و پیمون به دیدن کفاش رفت. کفاش اون که سروبز خیاط و دید از روی بخل و حسد گفت هرقدر آدم رزلتر باشه بیشتر شانس داره. ولی خیاد از ته دل خندید و تصنیفی زیر لب زمزمه کرد بعدم تمام پولش رو تقسیم کرد. حتی پول خوردائی که توی جیبش بود در آورد و با شوخی و خنده روی میز ریخت و در حالی که اونها رو تقسیم میکرد گفت راحت در بیار، راحت خرج کن. اون دوتا دوباره بار سفر بستن و مدتی به سفر ادامه دادن تا به جنگل بزرگی رسیدن. که در اون جاده دو راه میشد و هر دو راه به یک شهر منتهی میشد که محل اقامت پادشاه پادشاهی منطقه بود از یکی از اونها هفت روز طول می کشید تا به مقصد برسند و از دومی دو فقط دو روز ولی دو مسافر ما نمیدونستند کدوم راه طولانی تره، کدوم کدام راه کوتاهتره. اون دو تا زیر سایه درخت بلوط نشستند تا با هم مشورت کنند و تصمیم چه مقدار غذا با خودشون ببرند. کفش گفت آدم همیشه باید آینده نگری بکنه. من اونقدر نان همراه هم میبرم که یک هفته خیالم راحت باشه. خیات فریاد زد نون یک هفته با این بار سنگین دیگه نمیتونی راه بری و دیگه نمیتونی دوروبرتو ببینی. عقل حکم میکنه سبک سفر کنیم. پولی که در جیب منه، هم در تابستون به درد میخوره هم در زمستون نون در تابستون خشک میشه و در زمستون کپک میزنه لباسها من برای هفت روز سفر مناسب نیست تازه میتونیم راه کوتاهتر و میونبر رو پیدا کنیم من که فقط آزوقهٔ دو روز با خودم میبرم هر کدوم هرچه را لازم داشتن تهیه کردند و به این امید راه افتادند که بتونن از کوتاهترین راه به مقصد برسن اون دوتا وارد جنگلی شدند که سکوت عمیق بران حاکم بود و حتی نسیم هم سکوت اونو به هم نمیزد. زد. آب جویبارها بی سر و صدا داشت عبور می کرد و حتی پرنده ها هم قانون سکوت رو رایت می کردن. انبوهی شاخه های درختا اجازه نمی داد پرتوه خورشید به کف جنگل برسه. صدای کفاش در نمی آمد. سنگینی نون روی شونه هاش اونو وادار می کرد که هر از گاهی بیسته و قطره های عرق از صورت عبوس و تلخش پاک کنه از طرف دیگه خیاط شاد و سرزنده به این طرف و اون طرف می پرید و زیر لب اشعاری زمزمه می کرد خیات با خودش فکر کرد خدا هم از اون راضیه، چون اون در هر شرایطی تونسته شاکر باشه و شادمانی و خورسندی خودشو حفظ کنه دو روز گذشت و آزوغه خیات تمام شد. در روز سوم جاده جنگلی طولانی تر از اونچه که تصور می به نظر می رسید. به روحیه خیات زربه مختصری وارد شد. ولی اون جسارت خودشو از دست نداد و همچنان اعتقاد خودشو به مشیت الهی و خوش اقبالی حفظ کرد. خیاط در سومین شب گرسنه و خسته زیر درختی نشست و تا صبح گرسنه موند. روز چهارمم هم به همین منوال در گرسنگی گذشت. کفاش در چهارمین روزم مثل شبها و روزهای گذشته داشت غذاشو میخورد که خیاط از سر گرسنگی نگاهی بهش انداخت و از فرت گرسنگی مجبور شد از کفاش تکه نون بخواد. کفاش با لحنی مسخره و توهینامیز گفت تو همیشه شاد و سرخوشی حالا وقت اون شده که رنج و بیچارگی رو هم حس کنی پرنده های شاد و بیخیال صبحها ها چه, چه میزنن و غروب که میشه تومه اقاب میشن خلاصه اینکه کفاش هیچ رحم و مروتی از خودش نشون نداد صبح پنجمین روز خیات بیچاره از شدت گرسنگی و خستگی نا نداشت تا یک کلمه حرف بزنه گونه هاش رنگ پریده و چشم هاش گود رفته شده بود. کففش بدتینت به خیاط گفت: امروز حاضرم یه یتیک نون بهت بدم، اما به شرط اینکه چشم راست راستتو از هدقه در بیارم. خیاط بیچاره که همه فکر و ذکرش نجات زندگیش بود، چاره ای جز دادن به این شرط نداشت. اون برای آخرین بار با هر دو تا چشمش گریست و بعد خودشو تسلیم کفاش بیرحم کرد که دلش از سنگ شده بود در این لحظه خیات بینوا به یاد اونچه که مادرش گفته بود افتاد یه بار وقتی که اون پنهانی از انبار چیزی برداشته بود مادرش بهش گفته بود به ای بخور که مجازی و رنجی رو که باید تحمل کن وقتی خیاد اون تکنونو که بسیار گذاف خریده بود خورد و دوباره تونست روی پاهاش بیسته درد و بینوایی خودش فراموش کرد و با امیدواری به خودش تلقین کرد که با یک چشم هم میتونه دنیا رو ببینه. روز ششم گرسنگی همه نیروی اونو از بین برده بود و مقاومت اونو شکسته بود. شب که شد از شدت ضعف زیر درختی افتاد و صبح هفتمین روز نتونست از جاش تکون بخوره مرگ بر چهره اون سایه افکنده بود کفش سنگ دل شروع کرد به صحبت کردن و گفت دلم برات میسوزه حاضرم یه تیکه نون بهت بدم البته به این شرط که چشم دیگتو به من بدی خیات به یاد بیخیالی روزهای گذشته خودش افتاد و از خدا طلب آمرزش کرد بعد به دوست خودش گفت هر کاری دلت میخواد بکن من هم اون چرا که باید تحمل میکنم ولی یادت باشه که هیچ یک از اعمال تو از نظر خدا دور نمیمونه و اون روزی که باید به سزای اعمال زشتت برسی دور نیست منم سزاوار این همه سنگدلی نیستم وقتی روزگارم خوش بود همه ی درامتم تقسیم کردم کار در حرفه من خیلی زریفه باید کوک به کوک ببینم و دقت کنم تا کار از پیش ببرم. اگر هر دو چشممو از دست بدم دیگه نمیتونم کار کنم. اما حالا که قصد داری منو به کلی نابینا نا کنی لاغل در این جنگل رهام نکن که از گرسنگی بمیرم. کفاش که با هر اندیشه انسانی ودا کرده بود دومین چشم خیات رو ازش گرفت و یک تکه نان در دستش گذاشت. صبر کرد تا اون تک بخوره بعد چوبی به دستش داد تا با کمک اون بتونه راه بره. آفتاب داشت غروب می کرد که اونا از جنگل بیرون اومدن و نزدیک مزرعه یک چوب دیدن. کفاش و کنار چوب نشوند و اونو تنها گذاشت و از اونجا دور شد. کمی که گذاشت خیات بینوا، بر اثر خستگی، درد و گرسنگی به خواب عمیق فرو رفت و تمام شب و خوابید. صبح که بیدار شد دو تا کلاق دید. یکی از کلاغ به کلاغ دیگه گفت داداش بیداری؟ کلاغ دومی جواب داد بله بیدارم کلاغ اولی گفت میخوام یه چیزی بگم اگه نابینایی با قطرهای شب نمی که از دیشب دورو بر ما ریخته سر و تو بشوری دوباره بینا میشی اگر آدمای نابینا از خاصیت این شبنم خبر داشتند و میدونستند تا به حال چند نابینا رو بینا کرده اون وقت همه نابیناهای دنیا به اینجا سرازیر می شدن خیاد وقت این گفتگوها رو شنید از جیبش دستمالی در آورد و اون روی علفها کشید وقتی دستمال از جاله خیس شد اون به چشماش کشید و چشماش بینایی خودش رو به دست آورد کمی بعد سرشو رو بلند کرد و دید خورشید داره از پس قله های کوه طلوع می خیاط از جیب خودش نخ سوزنی در آورد و وقتی دید که مثل گذشته میتونه سوزن نخ کنه قلبش از شادی لبریز شد. دوتا زانواش زمین گذاشت و از این همه لطف خدا شکر گذاری کرد و نیایش صبحگاهیشو بهجا به آورد. بعد بخچه برداشت و گذشته رو از یاد برد و در حالی که زیر لب ترانهی زمزمه میکرد و سوت میزد به سفر خودش ادامه داد. اولین جانداری که خیاط بعد از بینا شدن دید، کره اسب قهوه‌ای رنگ بود که در مزرعهی آزاد و بیخیال جسخیز خیز می‌کرد. خیاط چنگ زد و یال اسب و گرفت. اون میخواست سوار بر اسب وارد شهر بشه، ولی کره اسب التماس کرد که رهاش کنه. اسب گفت: من هنوز کره کمسلنوسالی هستم. حتی آدمی سبکتر از تو هم کمرم میشکنه. چه برسه به سنگینی تو؟ بزار آزاد بمونم و جس کنم خیز تا قوی بشم خدا رو چه دیدی حتما روزی این لطف و محبت تو رو جبران میکنم خیات گفت پس بدو برو چون تو كره اسب چموش هنوز دهنت بوشیر میده خیات دست نوازشی بر پشت اسب کشید و ضربهای نوازشگرانه به اسب زد و اونو رها کرد خیاط که از روز پیش چیزی نخورده بود با خودش گفت قطرات جاله چشممو پر کرد ولی نانی به کف دستم نداد باید به دنبال یه چیز خوردنی باشم در همون موقع لک لکی در میان چمنزار ظاهر شد خیاد داد زد وایسا وایسا بعد چنگ زد و پای اونو گرفت و گفت نمیدونم تو مناسب خوردن هستی یا نه اما من انقدر گرسنمه که دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم باید سر تو ببرم و تو رو کباب کنم لکلک لک گفت: نه این کارو نکن من یه پرنده مقدسم هیچکس تا حالا به فکر اذیت و آزار من نیفتاده. علاوه بر این من برای انسانها خیلی سودمندم منو زنده رها کن ممکنه روزی بتونم این گذشته تو رو جبران کنم خیاط گفت: پسرموی لنگ دراز تو رو هم رها لک لکلک برخاست و به آرامی در سینکش آسمان پرواز کرد اون که پرید و رفت خیاط با خودش گفت حالا من موندم و این گرسنگی که هر لحظه داره شدیدتر میشه. دفعه بعد هرچی رو که پیدا کنم میخورم. همینطور که با خودش حرف میزد به آب بندی رسید که دوتا جوجه اردک در اون شنا میکردن. خیاط فوری یکی از اونها رو چنگ زد و گرفت و گفت اومدی چون تو رو خواسته بودم. همین که داشت سرش از تنش جدا میکرد اردک دیگه اومد و به خیات التماس کرد که زندگی فرزندش رو ازش نگیره. اردک به خیات گفت فکر از مادرت میگرفتن و برای کشتن می بردنت. مادرت چقدر قصه میشد. شد؟ خیات خوش گفت آروم باش، فرزندت نزد تو می مونه. بعد جوجه اردک رو در آب بند رها کرد و رفت. خیات در راهش به یک درخت تنومند رسید که قسمتی از تنش خالی بود در حفره خالی درخت زنبورهای وحشی این طرف و اون طرف می‌رفتن خیات با خودش گفت به پاس این همه کارهای نیکی که کردم خدا به هم پاداش داده اصل منو از گرسنگی نجات میده ملکه زنبورها با ناراحتی از حفره درخت بیرون اومد و گفت اگه آسایش ما رو به هم بزنی و کندوی ما رو خراب کنی، با نیش از خودمون دفاع میکنیم و جوری نیشت میزنیم که حس کنی هزاران سوزن به تنت فرو رفته. ولی اگه کاری به کار ما نداشته باشی و ما رو راحت بذاری، بدون تردید روزی به نحوی این لطف جبران میشه. خیاد دید که تنه خالی درختم براش فایده نداره، تا اینجا روی هرچی دست گذاشته بود، تیرش به سنگ خورده بود. حدود ظهر با معده خالی کشان کشان خودشو به شهر رسوند. در مهمون خونه نشست با هرس و ولع غذا خورد و دلی از ازا درآورد. همین که گرسنگیش برطرف شد نفس راحتی کشید و راه افتاد و به دنبال کار رفت. طولی نکشید که کار و صاحب کار خوبی پیدا کرد. در مدت کوتاهی زیرو بم کار آموخت و اسمش سر زبون افتاد. دیگه خیلی دلشون میخواست کچل و این خیاط ماهر بدوزه هر روز سر و کلهٔ آدمای تازهای پیدا میشد که میخواستند او با دستمزد بالاتر براشون لباس بدوزه اما خیاط بیشتر اونها رو رد میکرد تا اینکه پادشاه اونو به عنوان خیات باشی دربار منصوب کرد همونطور که در دنیا خیلی اتفاقها به هم رخ میده دست برغزا درست همون روز کفاش دوست قدیمی خیاط هم به دربار احزار شد تا برای درباریان کفش بدوزه. وقتی چشم کفاش به خیاط افتاد و دید چشماش سالمه به فکر فرو رفت و با خودش گفت باید پیش قدم بشم و اونو از بین ببرم وگرنه از من انتقام سختی می گیره. اما به قول معروف چاه کن همیشه ته چاه میمونه. شب که کار روزانه به پایان رسید، کفاش پنهانی وارد محفل پادشاه شد. عده‌ای از درباریا هم حاضر بودن کفاش گفت: پادشاه، به اطلاع مبارکتون میرسونم، خیاطی که تازه به استخدام دربار در اومده، مردی زرنگ و باهوشه. اون ادعا میکنه میتونه تاج زرین سلطنتی رو که تازگی گم شده پیدا کنه. پادشاه گفت: جدی؟ چه خبر خوبی! به خیات اطلاع بدین انتظار دارم تا صبح فردا تاج رو بیاره در غیر این صورت باید برای همیشه این شهر رو ترک کنه خیات که روحشم خبر نداشت کفاش این آش و براش پخته با ناراحتی فریاد زد پادشاه از من چه چیزی میخواین از دستم بر نمیاد بهتره به جای فردا همین الان شهر رو ترک کنم اون بار و بنش و بست ولی اونو به دوشش ننداخت تا مردم متوجه نشن که اون داره با خاری شهر رو ترک میکنه. بیرون شهر به همون آب بندی رسید که چندی پیش با اردک های اون دوست شده بود. اردک پیر کنار آب بند نشسته بود، بچه هاشو گذاشته بود در آب شنا کنن، خودش سرگرم خشک کردن بالهاش بود. وقتی چشمش به خیاط افتاد، فوری اونو شناخت و ازش پرسید چرا عبوس و غمگینه؟ حیات گفت اگه می دونستی چه بلایی سرم اومده همچین چیزی رو سؤال نمی کردی. بعد ماجرا رو تعریف کرد. اردک گفت این که کاری نداره. ما میتونیم تونیم راهش رو بهت نشون بدیم و کمکت کنیم. تاج داخل این آب بند افتاده. حالا هم ته این آبه. من و بچه ها میریم ته آب و اونو برات میاریم. تو هم دستمالتو همینجا پهن کن تا تاج روی اون بذاریم. خیاط دستمالش رو دور تاج بست و اونو رو نزد پادشاه برد. پادشاه از اینکه یک بار دیگه چشمش به تاج میافتاد زغ زده شده بود و به عنوان پاداش یک گردنبند طلا به گردن, گردن خیاط انداخت. کفش که میدید قافیه رو باخته و موقعیت خیاط داره بهتر میشه، خواب ای براشدید. نزد پادشاه رفت و گفت: پادشاه خیاط بیش از پیش به خودش مقرور شده و ادعا میکنه میتونه قصری شاهانه از جنس موم بسازه پادشاه این حرفو که شنید فوری به خیاط دستور داد همون قصریو که کفاش میگه بسازه پادشاه اضافه کرد که اگر این کار در عرض چند ساعت انجام نشه خیاط باید باقی مونده عمرشو در زیر زمین قصر زندانی بشه وقتی که خیاط متوجه شد چه دستور بهش داده شده با خودش فکر کرد، اوضاع داره خراب میشه. این دیگه کاریه که انسان از دستش بر نمیاد. دوباره بغچه به بغل راه افتاد و سرگردون از شهر بیرون رفت. سر راهش به همون درختی که تنه تو خالی داشت رسید. غمگین کنار شاخه ای نشسته بود که تعداد زیادی زنبور پرواز کنان از اونجا گذشتند. از غذا ملکه زنبورها هم در میون اونا بود و وقتی خیاط و دید اونو شناخت. ملکه جلو رفت و علت ناراحتیشو رو پرسید. خیات گفت: قمی در دلم نشسته که نگو بعد ماجرا رو برای ملکه زنبورها شهر داد. زنبورها بلافاصله فاصله شروع کردن به وزوز وز کردن و ملکه زنبورها به خیاط گفت الان به خونت برگرد. اما فردا با یه پارچه بزرگ بیا و قصر مومی و تحویل بگیر. خیاط به خونش برگشت. را به سمت قصر پادشاه به پرواز در اومدن. وقتی دیدن پنجره ها بازه داخل اتاقها رفتن و همه گوشه و کنارها را بررسی کردند. بعد برگشتن و شروع کردند به ساختن قصر مومی. عالی و زیبا شبهنگام کار به پایان رسید. صبح وقت خیاط قصر زیبای مومی رو دید، هیچ جای اون کم و نداشت. خیاد اونو در پارچه پیچید و نزد پادشاه برد. پادشاه با تحسین و تعجب بهش نگاه کرد و اونو در سالن پذیرایی خودش گذاشت. یک خونه بزرگ که از سنگ ساخته شده بود به خیاط هدیه داد. کفاش همچنان ناراحت و ناراضی بود. بنابراین برای سومین بار نزد پادشاه رفت و گفت خیاط تصور میکنه در قصر هیچ چاه یا چشمه وجود نداره اون با افاده میگه که میتونه فواره به ارتفاع قدی انسان درست کنه فواره که آب اون مثل بلور بدرخشه پادشاه بار دیگه دنبال خیاط فرستاد و بهش گفت اگه تا فردا صبح یه فواره به همون شکلی که گفتی برای قصر نسازی تو رو به دست جلاد میسپرم تا سرتو از تن جدا کنه. وقتی خیاط بیچاره از نزد شاه میرفت نمیدونست چیکار کنه. این بار از فرد بیچارگی به گریه افتاده بود چون مرگ و زندگیش در گرو انجام این کار بود. همینطور در بیرون شهر سرگردون بود که دید اسببی و کنان به طرفش میاد. این همون اسبی بود که زمانی خیاط بهش لطف کرده بود. کره اسب در این مدت اسب زیبا و چابکی شده بود. اسب بهش گفت: انگار به موقع رسیدم حالا میتونم جواب محبت تو بدم. میدونم مشکل چیه و دنبال چی هستی؟ من میتونم بهت کمک کنم. اسب ادامه داد. بپر سوار من بشو حالا میتونم به دو نفر آدم به هیکل تو سواری بدم خیات بعد از شنیدن این حرف با یک پرش سوار اسب شد حیوان مثل باد حرکت کرد و یکسره تا کنار دروازه قصر رفت بعد مثل برق سه بار اونو دور زد بار سوم پاهاشو به زمین کوبید و گرد و خاک فراوانی به هوا برخواست بعد از اون فواره‌ای به ارتفاع مردی که سوار اسب شده باشه از زمین فوران کرد. آب فواره به شفافیت بلور بود و نور خورشید اونو به رنگ‌های گوناگون درآورده بود. پادشاه با نگاه شگفت زده به فواره نگاه کرد و از خوشحالی در حضور جمع خیات رو در آغوش گرفت. خوشحالی خیات چندان نپایید. کفاش برای چهارمین بار توتی چید تا از شر مردی که اون همه بلا سرشو برده بود راحت بشه. پادشاه چندین دختر داشت که یکی از یکی خوشگل بودند. ولی پسر نداشت. کفاش به پادشاه گفت پادشاه، حرفهای قرورامیز خیات پایانی نداره. اون ادعا میکنه میتونه از هوا برای پادشاه یک پسر کچک بیاره. پادشاه بار دیگه دنبال خیاط فرستاد و گفت اگر در عرض نه روز با قدرت و توانی که داری بتونی برام پسر کوچکی بیاری اجازه میدم با دختر بزرگترم ازدواج کنی. خیاد با خودش فکر کرد برای من پاداش بزرگ و وسوسه انگیزیه ولی توان این کار رو ندارم. دست ما کوتاه و خورما بر نخیل. اگر سعی کنم از نخل بالا برم تا خورما بچینم ممکنه شاخش بشکنه و از اون بالا بیفتم. خیاد به خونش رفت. گوشه چون باطمه زد و به فکر فرو رفت تا ببینه باید چه کار کنه. خیلی فکر کرد ولی بالاخره به نتیجه رسید که هیچ چاره ای وجود نداره. بعد گفت اگه بمونم آرامش ندارم باید از اینجا برم. از پشت میز بلند شد، بخچش و بست، برای آخرین بار از وسط شهر گذشت و از شهر بیرون رفت. بعد از مدت کوتاهی به مرغزاری رسید. از وسط اون که رد می‌شد، به آشنای قدیمی خودش لکلک لک برخورد. لکلک لک با نگاهی فلسفانه حرکت یک قورباغه رو زیر نظر گرفته بود و دست آخرم اونو بلعید. بعد که سرشو برگردون، چشمش به خیاط افتاد. جلو رفت و باهاش سلام علیک کرد و گفت با این بارو بونه که پشتت بستی انگار میخوای شهر رو ترک کنی. خیاط ماجرای زندگی و سرنوشت غمانگیزشو رو سیر تا پیاز شهر داد. بعدم گفت آخرین گرفتاریش اینه که پادشاه از او انتظار داره براش بچه بیاره. این هم برآوردنش برای هیچ انسانی مقدور نیست. لک لک گفت انقدر قصه نخور. من کمکت می کنم تا به حال بچه های زیادی برای مردم این شهر آوردم. اینبارم یه شاهزاده کوچولی از چاه در میارم. تو به خونت برگرد و خیالت راحت باشه. روز نهم به قصر شاه برو. منم به اونجا میان. خیاط به خونش برگشت. تمام اون مدت رو روز شماری کرد تا در روز نهم به موقع به قصر بره. از ورود اون به قصر چیزی نگذشته بود که لکلک لک ظاهر شد. دوربر قصر پرواز کرد و بعد منقار خودشو به پنجره زد. خیاط پنجره رو باز کرد. پسرمو لنگ دراز با احتیاط وارد شد و با عبوحت از روی کف مرمرین سالن عبور کرد. لکلک لک پسر بچهای به زیبایی ها به منقار داشت که دستاشو به سوی ملکه دراز کرده بود. لکلک لک به سوی ملکه رفت و بچه را در دامانش گذاشت. ملکه هم بچه را بوسید و اونو به قلب خودش فشرد. دیگه از شادی سر از پا نمیشناخت. لکلک پیش از اینکه پرواز کنه و از اونجا دور بشه، خورجینش رو از دوشش برداشت و به ملکه داد. خورجین پر از پرهای رنگی بود که باید بین شاهزاده های جوان تقسیم میشد. شاهزاده خانمی که از همه بزرگتر بود گفت: من از اون پرا نمی بعد سهمشو به یکی دیگه از خواهرش داد. جون قرار بود به زودی ازدواج کنه. خیات مثل گذشته دوباره شاد و سرخوش شد و گفت انگار من در راه پرفراز و نشی به آزمایش الهی بودم. مادرم حق داشت که میگفت: اگه به مشیت الهی اعتقاد داشته باشیم و صادقانه زندگی کنیم هرگز دست نیاز به سوی کسی دراز نمیکنیم. بعد از این اتفاقها به کفاش دستور داده شد شهر رو برای همیشه ترک کنه. ولی قبل از اینکه بره برای خیات کفشی بدوزه که بتونه در عروسیش پایت کوبی کنه. کفاش راه افتاد و به همون جنگلی رسید که در اون با دوستش رفتاری بیرحمانه کرده بود. از بین جنگل رفت و رفت تا به چوبه مزرعه رسید. در حالی که خسته عصبانی و از گرمای روز کلافه شده بود خودش رو زیر چوب ها انداخت و طولی نکشید که از فرط خستگی خوابش برد و کفاش برای همیشه زیر اون چوبه ها به خواب رفت چون از آن زمان تا به حال نه کسی او را دیده نه خبری از او به شهر آورده کانال تلگرامی هزار داستان های افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نقطه ام نشانی ویبلاگ ما ام دی -e S-T-I-B-L-O-G-F-A-C-O-M <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی